داستان گلفاکس و گانفورد زمانهای قدیم پادشاه و ملکهی زندگی میکردن که پسری به نام زیگورد داشتند. وقتی پسرشون ده ساله بود، ملکهی پی تو بستر بیماری افتاد و بعد از مدتی هم مرد. پادشاه که همسرش رو خیلی دوست داشت، برای گرامیداشت یاد و خاطره‌ی اون با باشکوهی براش بنا کرد. پادشاه هر روز سر مزار همسرش می اومد و در غم از دست دادن همسرش گریه می کرد. یه روز صبح پادشاه مطابق معمول هر روز سر مزار ملکه نشسته بود. یه متوجه شد که یه بانوی خوش لباس به سمت اون اومد. پادشاه اسم اون زن رو پرسید. زن هم جواب داد که اسمش اینگبرگه. وقتی که اون زن از ماجرای فوت همسر پادشاه باخبر شد به اون گفت من هم به تازگی شوهرم رو از دست دادم. اگه آشناییمون ادامه پیدا کنه فکر میکنم میتونیم تا حدی تسکین خاطر پیدا کنیم. پیشنهاد زن پادشاه رو خوشحال کرد. بلافاصله فاصله اون رو به قصر خودش دعوت کرد بعد از مدتی هم پادشاه و این برگ با هم ازدواج کردند. بعد از انجام مراسم ازدواج، پادشاه روحیه از دست دفته خودش رو پیدا کرد و مثل روزایی سابق به شکار می رفت. به نامادریش خیلی علاقمند شده بود. شبا تو خونه پیش اون می موند. یه روز اصر ایندبرد به زیگرد گفت فردا پدرت به شکار میره تو هم باید همراه اون بری. اما زیگرد ترجیح میداد داد که توی خونه بمونه. روز بعد وقتی پدرش به شکار می رفت زیگرد اون رو همراهی نکرد. نامادری از این تصمیم زیگرد عصبانی شد اما زیگرد به حرفای اون گوش نکرد آخرش هم نامادریش بهش گفت که دست از این نافرمانیهاش برداره و در آینده پدرش رو همراهی کنه خلاصه بعد از اینکه پادشاه و همراهاش به شکارگاه رفتن این برد به زیگرد گفت که باید زیر تخت خودش رو قایم کنه و ازش خواست که همون جا بمونه تا سر فرصت خبرش کنه. زیگرد تا مدتی زیر تخت بی حرکت مونده بود. کم کم فکر کرد که دیگه موندنش بیش از حد زیر اون تخت هیچ سمری نداره. همون موقع زیگرد احساس کرد که کف اتاق داره می لرزه. انگار زمین لرزه شده بود. وقتی سرش رو از زیر تخت بیرون آورد، پاهای یه حیولای زن رو دید که وارد اتاق شد و با صدای بلند گفت صبح بخیر خواهر برگ آیا شاهزاده زیگور تو خونه است؟ این برگ جواب داد نه اون همراه پدرش به جنگل رفته. بعد هم این برگ برای خواهرش چیزی آورد تا با هم بخورد بعد از اینکه هر دو تا خواهر غذا خوردن خواهرش گفت از پذیراییت ممنونم بهترین برایی بود که تا به خوردم. اما ببینم گفتی شاهزاده زیگور تو خونه نیست درسته؟ این برد دوباره جواب داد گفتم که با پدرش رفته شکار خواهر حیولا خداحافظی کرد و از اتاق بیرون رفت وقتی اون کاملا دور شد این برد به زیگرد گفت حالا میتونی از زیر تخت بیرون بیای. موقع خواب پادشاه از شکار برگشت اما زنش درباره خواهر حیولاش هیچ حرفی به پادشاه نزد صبح روز بعد دوباره نامادری زیگرد ازش خواست که همراه پدرش به شکارگاه بره و باز هم زیگرد مخالفت کرد و ترجیح داد توی خونه بمونه. این بار این برد زیگرد رو زیر میز پنهان کرد و ازش خواست تا وقتی که صداش نکرده از زیر میز بیرون نیاد. برای مدتی طولانی زیگورد زیر میز بخوی شده بود. دوباره زمین درزید. انکار زمین درزه شده بود. خواهر حیولای اینگبرگ برای بار دوم به دیدن خواهرش اومد. وقتی اون وارد اتاق شد، از خواهرش پرسید: خب خواهر، امروز چطور؟ امروز زیگرد خونه است؟ اینگبرگ دوباره جواب داد: نه، با پدرش به شکار رفته. و اینگبرگ مثل دفعه قبل روی میز غذا چید و هر دو شروع کردن به غذا خوردن. بعد از اینکه غذاشون تموم شد، هیولا از جاش بلند شد و گفت از پذیراییت خیلی ممنونم خواهر. بهترین برده بود که تا به حال خورده بودم. و دوباره ازش پرسید ببینم تو مطمئن زیگرد خونه نیست. و این برگ دوباره جواب داد کاملا مطمئنم و بعد هم هیولا از خواهرش خداحافظی کرد و از اتاق بیرون رفت. وقتی خواهر این برگ کاملا دور شد زیگرد از زیر میز بیرون اومد. این دفعه نامادریش بهش گفت ببین زیگرد دفعه بعد نباید تو خونه بمونی اما زیگرد به اون گفت که موندن توی خونه هیچ خطری براش نداره و منظورش این بود که نمیخواست با پدرش به شکار بره صبح روز سوم وقتی پادشاه آماده رفتن به شکارگاه شد این برگ از زیگرد خواهش کرد که همراه پدرش بره اما اصرارهای نامادری هیچ فایده ای نداشت و زیگورد کله نشون داد و باز هم پدرش رو همراهی نکرد و گفت باز هم یه جایی رو پیدا کن تا من خودم رو اونجا مخفی کنم. وقتی که پادشاه به طرف شکارگاه عزیمت میکرد ایندبرگ زیگورد رو کنج دیوار مخفی کرد. و مدتی بعد کف اتاق زیر پاهای خواهر هیولای ایندبرگ به لرزه اومد و خواهر هیولا دوباره وارد اتاق شد. اون ناله کشید و گفت روز بخیر خواهر ببینم زیگرد خونه است؟ این برگ جواب داد. نه، اون طبق معمول با پدرش به جنگل رفته. فکر میکنم تا برگرده هوا تاریک بشه. خواهرش فریاد کشید و گفت: نه، تو دروغ میگی. دو تا خواهر سر این موضوع با هم تا مدتی طولانی جر و بحث کردن. تا اینکه خسته شدن. این میز غذا رو چید و دو مشغول غذا خوردن شدند. بعد از خوردن غذا، خوهر حیولا گفت باید از این پذیرایی گرم تو سمیمانه تشکر کنم. بهترین برایی بود که تا با حال خورده بودم. و دوباره پرسید تو مطمئن نیزیگرد خونه نیست؟ به جواب داد کاملا مطمئنم خوهر. قبلنم بهت گفته بودم که هر روز صبح زود همراه پدرش به شکار میره. خوهر حیولا با شنیدن این جواب سر خواهرش فریاد کشید و گفت اگه اون همین نزدیکی باشه و حرف های ما رو شنیده باشه من وردی میخونم که اون به یه آدم سوخته و چروکیده تبدیل بشه و برای پیدا کردن من شاید هرگز آروم و قرار نداشته باشید. این حرف ها رو زد و از اتاق بیرون رفت. تا مدتی این بلک سر جاش میخکوب شده بود و بعد هم اون زیگرد رو از مخفیگاهش صدا کرد. وقتی زیگرد از مخفیگاهش بیرون اومده بود، قیافش سوخته و چروکیده شده بود. این بهش گفت: "حالا نتیجه این کل شقیات رو دیدی؟ نباید وقت رو تلف کنی چون هر لحظه ممکنه پدرت از راه برسه." این بلا بلافاصله از اتاق بیرون رفت. به اتاق دیگه ای رفت و از توی یه صندوقچه یک کلاف نخ و سه تا حلقه یه انگشتری طلا بیرون آورد. اونا رو به زیگورد داد و گفت: اگه این کلاف نخ رو روی زمین بندازی قل میخوره و تا پای یه صخره سنگی میره. اون وقت بالای اون سخری سنگ خواهرام رو میبینی. اون تو رو صدا میزنه و میگه من از مدتها پیش منتظر چنین لحظه ای بودم. اینم از شاهزاده زیگرد. امشب اون قراره توی یک دیگ بره. این دیگ دوباره به حرفاش ادامه داد و گفت اما تو نباید از حرفهای اون وحشت کنی. خواهرم تو رو به وسیله یه قلا بکشتی بالای صخره سنکا میکشه. تو باید از طرف من به اون سلام برسونی و کوچیکترین حلقه انگشتری رو انتخاب بکنی و بهش هدیه بدی. این هدیه اون رو خوشحال میکنه. بعد خواهرم از تو میخواد که باهاش مبارزه کنی. وقتی باهاش مبارزه میکنی خسته میشی. اون یه ظرف معجون به تو میده. اما خواهرم خبر نداره که این معجون نیرو بخشه نیروی بدنی چند برابر میشه و میتونی بهش غلبه کنی بعدم خواهرم از تو میخواد که شب رو پیشش بمونی همین اتفاق برای دو خواهر دیگه منم میفته اما قبل از هر چیز این نکته رو فراموش نکن اگه سگ من پیش تو اومد و پنجه رو روی زانوت گذاشت و اشک از چشماش جاری شد بلا فاصله به خونه برگرد چون این یعنی اینکه زندگی من تو خطره حالا هر چیز زودتر اینجا رو ترک کن و نامادریت رو هم فراموش نکن این بر کلاف نخ رو روی زمین انداخت و زیگرد از نامادریش خداحافظی کرد اصر همون روز کلاف نخ غل خورد و رفت و رفت و رفت تا اینکه پای یه صخره سنگی بلند رسید وقتی زیگرد سرش رو بلند کرد خواهر حیولا این برد رو برای صخره دید. اون از اون بالا نه کشید و گفت: بالاخره اومدی منتظرت بودم. امشب قرار شاهزاده زیگور توی این دیگ بره. بیا دوست عزیز بیا با هم مبارزه کنیم. خواهر حیولا این حرف ها زد و یک قلاب کشتی رو پایین فرستاد و زیگورد رو بالا کشید. زیگرد خیلی وحشت زده شده بود. اما خیلی زود به یاد حرفهای نامادریش افتاد و. بعد از رسوندن پیغام خواهرش حلقه انگشتری رو بهش هدیه داد. خواهر هیولا خیلی خوشحال شد. زیگورد رو به مبارزه دعوت کرد. زیگورد از اونجایی که همه کارا طبق برنامه پیش میرفت با شور و شوق زیاد قبول کرد که مبارزه کنه. بعد از یه مدتی مبارزه زیگورد دیگه قادر نبود که ادامه بده. خواهر هیولا متوجه شد که زیگورد خسته شده. بهش یه معجون داد. با خوردن اون معجون نیروی بدنی زیگرد چند برابر شد و تونست به خواهر هیولا غلبه کنه. خواهر هیولا بهش گفت بهتره امشب همینجا بمونی. زیگرد هم خیلی زود پیشنهادش رو قبول کرد. صبح روز بعد زیگرد دوباره اون کلاف نخ رو روی زمین انداخت. کلاف بعد قل خوردن روی زمین رفت و رفت و رفت تا پای پایی صخره سنگ مرتفع ایستاد وقتی زیگرد سرش رو بلند کرد بالای صخره سنگ حیولای دیگه ای رو دید که خیلی زشتر از حیولای قبلی بود اون هم زیگرد رو صدا می زد و می بالاخره اومدی؟ منتظرت بودم امشب قرار شاهزاد زیگرد توی این دیگ بره بیا دوست عزیز بیا با هم مبارزه کنیم اون هم زیگورد رو به وسیل یه بالا کشید. زیگورد بعد از رسوندن پیغام نامادریش حلقه انگشتری دوم رو بهش هدیه کرد. اون از دیدن حلقه انگشتری خیلی خوشحال شد. و بلافاصله زیگورد رو به مبارزه دعوت کرد. اونو برای مدتی با همدیگه مبارزه کردن تا اینکه زیگورد ضعف کرد. خواهر حیولا دوباره معجون دیگه ای رو به زیگورد داد. وقتی زیگورد اون مجون رو خورد نیروی بدنی خارق‌العاده‌ای به دست آورد و تونست این خواهر را هم شکست بده. صبح روز سوم یه بار دیگه اون کلاف نخ رو روی زمین انداخت و کلاف بعد از قل خوردن آخرش پای صخره سنگ مرتفع رسید. بالای اون سخر هم حیولای که خیلی زشتر از اون دوتا حیولای قبلی بود، ایستاده بود. وقتی هیولا زیگرد روشناخ گفت، بالاخره اومدی؟ منتظرت بودم. امشب قرار شاهزاد زیگرد توی این دیگ بره. بیا دوست عزیز. بیا با همدیگه مبارزه کنیم. بعد هم مثل دوتا خواهر قبلیش زیگرد رو بالا کشید. زیگرد بعد از رسوندن پیغام نامادریش حلقه انگشتری سوم رو به اون زن هدیه داد. و بعد هم زیگرد شروع به مبارزه کرد. این بار مبارزه خشن و طولانی بین اون دو نفر شروع شده بود. آخرش زیگرد خسته شد. هیولا معجونی به زیگرد خورند که باعث شد زیگرد خیلی نیرومند بشه و اون رو به زانو در بیاره. بعد هم هیولا به زیگرد گفت تو منو شکست دادی. پس حالا خوب به من گوش بده. نزدیکی های اینجا ای هست که تو ساحل اون دختری با یه قایق بازی میکنه. سعیکن با اون دوست بشی و این حلقه انگشتری رو به اون بدی. در حال حاضر تو نیرومنتر از همیشه ای محفق باشی زیگرد بعد از شنیدن حرفهای هیولای سوم به سمت دریاچه براه افتاد اونجا دختری رو در حال بازی کردن با یک قایق دید زیگرد پیش اون دختر رفت و اسمش رو پرسید دختر جواب داد اسم من هلگاست خونم همین نزدیکی است. زیگورد؟ حلقه انگشتری رو بهش هدیه کرد و ازش خواست که با هم بازی کنند. هلگا از این پیشنهاد خیلی خوشحال شد چون خواهر و برادری نداشت که باهاش هم بازی بشه. اونها تا مدتی طولانی کنار دریاچه سرگرم بازی بودند. وقتی عصر شد، زیگورد ازش خواست که به اتفاق هم به خونه هلگا برن. اما هلگا باهاش مخالفت کرد و گفت: "تا به هیچ غریبه‌ای بدون اجازه پدرم به خونه ما نیومده." پدرم یه قول بسیار خشنه. بالاخره زیگرد خیلی اصرار کرد. آخرش هلگام راضی شد. اما وقتی اونها نزدیک خونه هلگا رسیدن اون دستکش خودش رو روی صورت زیگرد گرفت و توی چشم به هم زدن زیگرد به صورت کلاف پشم در اومد. هلگا کلاف پشم رو زیر بغلش زد و اون رو به اتاقش برد و زیر تخت گذاشت. همون موقع پدر هلگا سراسیمه وارد اتاق دخترش شد و در حالی که همهی خونه را جستجو می‌کرد، کنان گفت: "اینجا بوی آدمیزاد میده. ببینم هلگا زیر تختت چی انداختی؟" هلگا جواب داد: "اون یه کلاف پشم پدر." پدرش هم جواب داد: "شاید هم بوی اون پشم که منو به اشتباه انداخته." و بعد هم آروم گرفت. روز بعد هلگا کلاف پشم رو زیر بغلش زد و برای بازی کردن بیرون اومد وقتی کنار دریاچه رسید دوباره دستکش خودش رو روی کلاف پشم گرفت و کلاف پشم تبدیل به زیگورد شد اونا تمام روز کنار دریاچه بازی میکردن. زیگرد بازیهای مختلفی به هلگا یاد داده بود وقتی اصر شد دوباره اونها به سمت خونه هلگا بهراه افتادن بین راه هلگا به زیگورد گفت فردا میتونیم با خیال راحت توی خونه بازی کنیم چون قرار پدرم به شهر بره. وقتی نزدیک خونه رسیدن، هلگا دوباره دستکش خودش رو روی صورت زیگرد گرفت و اون رو دوباره به کلاف پشم تبدیل کرد. طبق گفته های هلگا، صبح روز بعد پدر هلگا راهی شهر شد. هلگا به محض اینکه از رفتن پدرش مطمئن شد، دستکش خودش رو روی کلاف پشم گرفت و زیگرد ظاهر شد. اون دوتایی سرگرم بازی شدند. تمام اتاقهای خونه رو یکی یکی گشتن. چون پدر هلگا کلید همه ی اتاقها رو بهش داده بود. اما وقتی اونها در آخرین اتاق رو باز کردند، زیگورد روی دست کلیدها متوجه کلیدی شد که ظاهرش نشون می‌داد که مدت طولانی یکی ازش استفاده نشده. به خاطر همین از هلگا پرسید، این کلید مال کدوم اتاقه؟ هلگا سکوت کرد و جواب نداد. زیگورد گفت: اگه بخوام بفهمم که این کلید مال کدوم یکی از این اتاقاس ای داره؟ همون موقع زیگورد یه در آهنی سنگین رو دید. از هلگا خواهش کرد که اون رو باز کنه. اما هلگا هم سعی میکرد که از این کار خودداری کنه. آخرش در برابر اصرارای زیگورد تسلیم شد و در آهنی رو هم باز کرد. زیگرد در آهنی سنگین رو هل داد و بعد از باز شدن در اسب زین شده ای رو دید. روی دیوار هم یه شمشیر جواهر نشون بود. روی دسته یه شمشیر نوشته حکاکی شده بود. هر کس این اسب رو سوار شد و این شمشیر رو به کمرش بست به سوی خوشبختی قدم برمیداره. زیگرد از دیدن اسب انقدر شگفت زده شده بود که زبونش بند اومده بود. اما بالاخره، نفس عمیقی کشید و گفت اجازه بده برای یک بار همکهشده سوار این اسب بشم و این اطراف یه چرخی بزنم قول میدم دیگه هیچ تقاضایی دیگه از نداشته باشم هلگا هلگا جواب داد میخوای سوار این اسب بشی همون لحظه رنگ از چهرش پرید و گفت سوار گلفاکس میخای بشی اگه این کار رو بکنی پدرم هرگز منو نمیبخشه زیگورت گفت اما حالا که پدر دینجا نیست نباید نگران این موضوع بشی به علاوه من خیلی احتیاط میکنم من وحشی ترین ها رو هم سوار شدم و اونها رو تونستم رام کنم هلگا با شک و تردید جواب داد حالا که اصرار میکنی خیلی خوب. اما باید خیلی احتیاط کنی سیگورد یک لحظه به فکر فرو رفت و سر جای خودش بی حرکت موند و گفت اما اون شمشیر رو هم میخوام هرچند پدر من یک پادشاهه، اما تا به حال چنین شمشیر زیبایی نداشتم. این شمشیر جواهر نشون باید یه اسم هم داشته باشه، مگه نه هلگا؟ هلگا جواب داد اسم این شمشیر گانفورده، به معنی شاهین نبرد. و گلفاکس هم به معنای یال تلاییه. حالا که میخوای اصف رو سوارشی، میتونی اون شمشیر رو هم به کمرت ببندی. در زم اگه قرار شمشیر رو هم برداری، باید اون چوب دستی و سنگ و ترکه رو هم به همراه داشته باشی. زیگورت جواب داد. حمل کردن این چیزا کاری نداره. اما اینا چه به درد میخوره؟ هلگا جواب داد. پدرم این چیزها رو به این اسب ترجیح میده. چون کسی که این اسب رو سوار میشه، در صورتی که نیروهای دشمن دنبالش کنن، با انداختن این ترکه پشت سرش به لا فاصله جنگل انبوه ظاهر میشه و اگر نیروهای دشمن از این موضوع باخبر باشن و نیروی جادوی این ترکه رو خنسا کنن کافیه با چوب دستید به یه سنگ بکوبی تا یه بارونی از هایی که هر کدومش به اندازه یه سیبن از آسمون فرود بیاد و دشمنا رو از بین ببره سیگورد بعد از شنیدن حرفهای هلگا سوار اسب شد و شمشیر رو به کمرش بست و همه اون چیزها رو هم برداشت. اما وقتی سوار اسب شد تا اطراف خونه گشتی بزنه، یه دفعه سر اسب رو چرخوند و تاخت تاختن از اونجا دور شد. بعد از مدتی پدر هلگا به خونه برگشت و دید که دخترش داره گریه میکنه، وقتی اون ماجرا رو از زبون دخترش شنید، بلا فاصله سوار یه اسب تیز روی دیگه ای شد و تاختنام به دنبال زیگورد رفت. وقتی زیگرد پشت سرش رو نگاه کرد و هیولا رو در تغییب خودش دید، فوریون ترکه رو پشت سرش انداخت و توی چشم به هم زدن جنگل انبوه ظاهر شد. هیولا به خونه برگشت و تبرش رو برداره و با قطع کردن درختای جنگل راه خودش رو باز کنه. وقتی زیگرد برای بار دوم پشت سرش رو نگاه کرد، هیولا رو دید که خیلی بهش نزدیک شده. همون موقع با چوب دستی که دستش بود، روی سنگ کوبید و بارونی از دونه های تگرد شروع باریدن کرد و حیولا زیر زربه های اون دونه های سنگین تگرد کشته شد بعد از کشته شدن حیولا زیگورد به طرف خونش به راه افتاد بین راه سگ نامادریش رو دید که از چشماش عشق جاری شده با عجله به سمت خونشون دوید وقتی که وارد خونش شد نه نفر از خدمتکارای مرد رو دید که نامادریش رو با تناب به یه ستون بستن. بعد از نجات جون نامادریش به اتفاق برای دیدن پدرش رفتن. پادشاه قمگین و ناراحت روی تخت دراز کشیده بود. هیچی نخورده بود چون فکر میکرد که پسرش به وسیله ملکه کشته شده. اما وقتی اون پسرش رو مقابل چشمش صحیح و سالم دید خیلی خوشحال شد. اون رو در آغوش کشید. زیگورت همه ماجرا رو برای پدرش تعریف کرد. بعد از اون ماجره ها زیگورت هلگار رو به قصر را برد و با هم ازدواج کردند و سالیان سال با خوشی و خوبی در کنار هم زندگی کردند. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها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 ادساین مهران دوستی